داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان پادشاه و سنجاب روزی روزگاری پادشاهی بود که به مقام خود خیلی میبالید او جوان اهل مطالعه و باهوش بود هیچ کدوم از جوانای خانواده سلطنتی در قدرت و شجاعت به پاش نمی رسیدند. در ضمن او ثروتمندترین فرد در سرزمین خودش بود روزی همراه وزیرش توی باغش قدم میزد و میگفت مطمئنم که هرگز کسی جرأت نمی کنه در مقابل من به خودش بباله خوشحالم که از همه بهتر و داناترم وزیر پیر که همیشه با تمام حرفهای پادشاه جوان موافق بود هیچ پاسخی نداد حتی لبخندم نزد پادشاه از این کار وزیر تعجب کرد پرسید چرا وزیر خوب من ساکته؟ وزیر خندید و جواب داد آلی جناب اجازه بدین با شما کاملا رو راست باشم شما نمیتونین مطمئن باشین که هرگز کسی در مقابل شما به خودش نباله درسته که در قلم روی سلطنتی خودتون از همه برتر هستین اما ممکنه ادهی به این موضوع آگاه نباشن از طرفی هر کسی خودبینی خاص خودشو داره حتی گاهی وقتا دیده شده که کسی خودش رو فرد سلحشو رو جسور فرض کرده بنابراین باید جلوی افرادی که برتری شما را نادیده میگیرند گرفت در همین موقع سنجاب کوچیکی جلو دوید و از ستون مرمری مقابلشون بالا رفت سنجاب سکه ای رو که در پنجه های جلویی خودش نگه داشته بود بالا برد تا به شاه و وزیر نشون بده پادشاه با حیرت به سنجاب نگاه کرد سنجاب شروع کرد به خوندن من ثروت زیادی دارم پادشاه چقدر ثروت داره افسوس چرا او اینطور با رنج و حسادت به من نگاه میکنه پادشاه سخت براشفته شد قبل از اینکه وزیر بتونه کلمه ای بگه به سمت سنجاب حمله برد و سنجاب سکر رو انداخت و فرار کرد پادشاه سکر رو برداشت و گذاشت تو جیبش بعد نگاهی به وزیرش انداخت و با خوشنودی لبخند زد اما وزیر همچنان ساکت بود. عصر همون روز شاه و وزیر مشغول مذاکره با سفیرهای کشورهای همسایه بودند که ناگهان دوباره از بالا صدای آواز سنجاب رو شنیدند. با صدای بلند اعلام میکنم اگه پادشاه بسیار ثروتمند و مغروره به خاطر ثروت منه. خون پادشاه به جوش اومد. اما ناچار بود که خودشو توی اون شرایط کنترل کنه چون در حضور ها نفر مهمان بود سنجاب از ستونی به ستون دیگه میپرید و آوازشو تکرار میکرد. سفیرها صداش رو میشنیدند اما حرف یا لبخندی نمی تا مبادا خاطر پادشاه آزرده بشه بعد از اینکه مهمونا برای استراحت به اتاق‌های خودشون رفتن پادشاه به جستجوی سنجاب پرداخت او همه جا رو گشت اما موفق نشد سنجاب رو پیدا کنه. پس از خشم و عصبانیت اونقدر بیقرار شد که نتونست شب بخوابه. پادشاه همیشه روز رو با صدقه دادن به فقرا شروع می کرد. فردای اون روز وقتی مشغول صدقه دادن بود سنجاب دوباره در کنارش ظاهر شد و شروع کرد به خونده. ببینید چطور با غرور صدقه میده؟ آیا این ثروت من نیست که در دست داشه؟ پادشاه دستور داد تا هر طور شده خدمتکاراش سنجاب رو دستگیر کنن. اما بازم سنجاب فرار کرد. پادشاه بیچاره مجبور شد یه بار دیگه خشم خودش رو کنترل کنه. چند ساعت بعد وقتی پادشاه مشغول صرف نهار بود، سنجاب پنهونکی از بین پنجره ها وارد شد و شروع به خوندن کرد. آیا خندهدار نیست که با پول من پادشاه غذاهای خوشتم و خوشمزه میخوره؟ شاه به قدری خشمین شد که نتونست لقمه دیگه ای رو گورت بده. این بارم خدمتکارا از هر طرف برای دستگیری سنجاب حمله شدن اما نتونستن بگیرنش. شب درست موقعی که پادشاه میخواست شام بخوره سنجاب دوباره پیدا شد و همون آهنگ موقع اینها رو خوند. پادشاه دیگه داشت احساس بیچارگی میکرد. سکه سنجاب را از جیبش بیرون آورد و به طرفش پرتاب کرد سنجاب سکه را قاپید و این آوازو خوند پیروزی از آن منه از آن سنجاب نیرومند حالا به همه مردم میتونم بگم که پادشاه همه ثروت منو پس داد چون از قدرتم میترسید پادشاه مثل دیوونه دنبال سنجاب دوید اما سنجاب یه دفعه ناپدید شد شاه اون شب رو با بیخوابی پشت سر گذاشت نیماهای شب کلمات سنجاب به یادش می و آزارش میدادند. صبح پادشا به وزیرش گفت راه دیگهی برام باقی نمونده فکر کنم مجبورم همه سربازانم رو احزار کنم بهشون دستور بدم تا تمام سنجاب های این سرزمین رو بکشن وزیر جواب داد خشم و عصبانیت شما رو درک میکنم اما هیچ اطمینانی وجود نداره که سربازای ما موفق بشن همه سنجاب های قلم قلمرو حکومتی رو بکشن ممکنه میلیون ها سنجاب در مزارع ذرت یا توی جنگلای متراکم یا سرزمینهایی که سربازان نمیتونن واردشون بشن یا در صخره‌های بلند کوهها پراکنده باشن و قایب شده باشن از طرفی سنجاب ها برای این که وارد سرزمین ما بشن که نیاز به مجوز و گذرنامه ندارن شاید سنجابی از سرزمین همسایه وارد کشور ما بشه سربازان ما در مبارزه بسیار دلیر و جنگجو هستند اما شاید در مبارزه با سنجاب ها احساس ناامیدی و ناخوشنودی کنند به خصوص اگه نتونن همه سنجابا رو بکشن و اون سنجاب شیطانی که باعث رنجش شما شده بتونه شانس بیاره و فرار کنه در این صورت همه ی تلاشای ما به هدر میره مردم چی میگن؟ تاریخ آینده درباره شما چی مینویسه؟ خنددار نیست که سالها آینده درباره شما چی نوشته بشه؟ آیا خنددار نیست که سالها بعد دانش در درس تاریخ خودشون بخونن که در زمانهای دور پادشاهی وجود داشت که سپاهش در مقابل سنجاب شکست خورد؟ پادشاه آجزانه سوال کرد: پس چه کار باید بکنه؟ وزیر گفت: «عالی جناب، خیلی راحته. سنجاب رو ندیده بگیرید. اگه وقتی برای اولین بار در باغ پیدا شده بود بهش توجه نمیکردید یا اگه بدون عصبانیت فقط به فخر فروشی بیهودش گوش میدادید، بدون اینکه براشفته بشید؟ این مشکل پیش نمی اومد. هر چند هنوز هم برای تغییر وضعیت دیر نشده. در همین لحظه سنجاب دوباره پیداش شد و شروع کرد به خوندن که کسی نیست که ندونه پادشاه ثروت منو و به خاطر ترس از قدرتم به من برگردوند. پادشاه آرام ایستاد، خندید و با ملایمت گفت بله کیه که ندونه که سنجاب نیرومند در خیرد و ثروت بهتر از همه است. بهتر از یه مهاراجه نیرومندتر از یه پادشاه. او حتی میتونه به راحتی آب خوردن یه امپراتوری به وسعت اقیانوس رو اداره کنه. سنجاب به عقب برگشت. با تعجب نگاهی به پادشاه انداخت. بعد بدون هیچ کلمه ای ناپدید شد و دیگه هیچ کس او رو ندید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی